دوستان چطور دعا میکنیم؟ واقعا دعا برای چیه؟ وقتی دعا میکنیم چی می اینها و بسیاری سوالات دیگه در درس امروز پاسخ داده شده. به کلاس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. خوشحالیم که تصمیم گرفتید با ما وقت بذارید. در درس امروز ما بر چیزی تمرکز خواهیم کرد که قالبا به اون دعای خداوند گفته میشه. اونجا که عیسی مسیح خداوند به شاگردانش یاد داد که چطور دعا کنیم اما بهتر می بود که در واقع اون رو دای شاگردان میگفتیم ما اینه که این درس ها به شما کمک کنه تا در نزدیک شدن به خداوندمون رشد کنید و شاگرده بهتری برای اون بشید حالا با هم به دقت به درس امروز گوش میکنیم چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارن که در کنایس و گوشه های ایستاده ها نماز گذارن تا مردم ایشان را ببینند هر آینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودند لکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما و پدر نهانبین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد و چون عبادت کنید مانند امت ها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان میبرند که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشوند پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را میداند پیش از آنکه از او سوال کنید پس شما به این اینطور دعا کنید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ملکوت تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشید ما را در آزمایش می آور بلکه از شرید، ما را رهایی ده زیرا ملکوت و قوت و جلال تا عبدالل از آن توست آمین زیرا هرگاه تقصیرات مردم را به دیچان بیامرزید پدر آسمانی شما شما را نیز خواهد آمرزید اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید آیاتی که شنیدید از متا شش 6 براتون خوندم از آیه 5 الی آیه 15 در متا باب شش، عیسی به ما میگه که به بالا نگاه کنیم. در قسمت های اولیه تعلیم که ما اون رو مععزه سر کوه گفتیم، او به ما میگه که به درون نگاه کنیم، وقتی که در مورد خوشاب حالها تعلیم میداد. بعد در ادامه این باب طولانی، متا باب پنج از آیه یازده، عیسی میگه حالا به اطراف نگاه کنید و در تمام ارتباطات زندگی خود این چیزهای عالی رو که در درونتان جریان داره اجرا کنید. زیرا معجزه تولد تازه در شما در حال انجام شدن هست اینجا عیسی در مورد فیض روحانی عظیم دعا سخن میگه. دعای شما باید عمودی باشه و نه افقی. این تعلیم بزرگ عیسی در مورد دعا به ما میگه که به تنهایی به خلوت برید. اما نکته اینجاست که باید تنها باشید. در را ببندید تا کسی جز شما و خدا اونجا نباشه و میبینید که پدر شما که در آسمان هست در آن مکان مخفی حضور داره. او واقعاً اونجاست. وقتی در اون مکان مخفی در رو میبندید و با انضباط دعا کردن با او ارتباط برقرار می کنید، به شما پاداش خواهد داد. دعا کردن به طور تحت اللفظی به معنای خواستن هست. اگر در فرهنگ لغت به اون نگاه کنید، دعا کردن به معنای تقاضا کردن یا درخواست کردن هست. اون فریسی در لغا با هجده چیکار می کرد؟ او می خواست همه افراد حاضر در معبد بدونن که او چقدر پرهیز کاره. اینکه او دوبار در هفته روزه می گیره اینکه ده یک میده و مثل دیگران نیست، مخصوصا مثل باجگیران. یادتون باشه که یک باجگیر جایگاه مهمی نداشت. اما او به سینه خود زد که یک نمادی از حالت پریشانی و ندامت هست. او متأثر بود. او چیزی خواست، او دعا کرد خدایا بر من رحم فرما. دعا تقاضا هست، اما اساره و ذات دعا، آنگونه که عیسی در متا باب 6 به مانند هدیه دادن تیتروار به ما میگه یک انضباط روحانی هست که نشون میده ذات خدا چیه این به معنای دعای عام نیست بلکه به ما میگه که ذات دعا چیزیه که در اتاق خانه شما اتفاق میفته وقتی در بسته است و فقط شما و خدا حاضر هستید به عبارتی پرمعنی ترین دعا زمانیه که شما تنها هستید زمانی که شخص دیگری نیست که خطاب به او سخن بگویید شخص دیگری نیست که تحت تأثیرش قرار بدید و بعد وعده بزرگ اینه از اون جایی که این یک انضباط روحانیه پدر شما که در اون مکان مخفی حضور داره به شما پاداش خواهد داد در عبرانیان باب 11 وعده داده شده زیرا هر که به خدا تقرب جوید لازم است که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا میدهد عیسی در تعلیم درباره انضباط دعا کردن گفت شما نباید دائما تکرار باطل کنید تکرار کردن اشتباه نیست. تأکید در اینجا بر کلمه باتل باطل هست. تکرار بیهوده کردن در دعاها اشتباهه. تکرار بیهوده همچون یاد دعایی کوچکی هستند که به یک چرخ متصل باشند و چرخ میچرخه با این فکر که هر بار میچرخه دعاها نیز به دور خود میچرخند و به این شکل خدا تحت تاثیر قرار میگیره. عیسی گفت که لازم نیست چنین کاری بکنید. بنیادی که عیسی تعلیم بزرگ خود رو در مورد دعا بیان میکنه که میتوان اون را دعای شاگردی نامید در آیه هشت دیده میشه. او میگه زیرا پدر شما حاجات شما را میداند پیش از آنکه که سوال کنید. اما مشکل ما اینه که نمیدونیم اراده خدا چیه. ما هیچ سرنخی نداریم و با این اوصاف اغلب دعا نمی کنیم. پولس در رومیان باب 8 میگه نگذارید که این مانع از دعا کردن شما بشه. در هر شرایط دعا کنید. اگر دل شما صاف باشد روح القدس که اراده خدا را میداند برای شما بر طبق اراده خدا شفاعت میکند و بعد شما آنچه را که برای تقاضا کردن در مقابل تخت خدا نیاز دارید، خواهید داشت. به عبارت دیگه پولس میخواهد بگه هر جور شده دعا کنید. اگر اراده خدا را نمیدونید، اگر حتی نمیدونید برای چی دعا کنید، اما باز هم دعا کنید. اگر دل شما راست باشه، اما برای موضوع اشتباهی دعا کنید، روح القدس بر طبق اراده خدا برای شما شفاعت خواهد کرد و خدا موضوع درست رو در دل شما قرار خواهد داد من معتقدم این اساس تعالیمی هست که عیسی درباره دعا میده ما اون رو دعای ربانی میگیم در حقیقت نباید به اون دعای ربانی یا دعای خداوند بگیم چون خداوند هیچگاه این دعا رو نکرد دعای خداوند دعایی بود که در باغ جتسیمانی انجام داد وقتی دعا کرد که پدر اگر ممکن است این جام را از من دور بگردان با این حال نه اراده من بلکه اراده تو بشود دعای خداوند دعایی که در یوحنا باب 17 بیان شده این دعا رو به طور دقیقتر میتوان دعای شاگردان نامید عیسی گفت وقتی دعا میکنید این طور دعا کنید برخی میگن این دعا دعایی که باید خونده بشه بعضی ها هم میگن این تعلیم درباره دعاست این دعا بیشتر شبیه به روش دعا کردن هست به این روش دعا کنید بعضی هم شاید بگن زمایر در این دعا جمع هستند بنابراین باید در دعای جمعی خوانده بشن این دعا نمیگه نان روزانه مرا به من بده مرا ببخش مرا هدایت کن مرا رهایی بده زمایر جمع هستند به ما بده ما را ببخش ما را هدایت کن به همین خاطره که بعضی ها میگن این دعا باید به طور جمعی خوانده بشه من شخصم فکر میکنم هیچ کدوم از اونها نیست هر دو هست من معتقدم که این یک دعاست و معتقدم که دعایی بینظیر برای دعا کردن هست مخصوصا اگر اون رو بفهمید و تنها یک تکرار بیهوده نباشه فکر نمی کنم که تکرار کردن مداوم این دعا آزاردهنده باشه مادامی که ما در عین خواندن این دعا در روح این دعا قرار بگیریم فکر می کنم می میتونیم سخنانی عالی به خداوند بگیم و پادشاهی خدا رو به شکلی زیبا بطلبیم توجه کنید که هفت درخواست در این دعا می‌بینیم بعضی‌ها میگن این یک الگو، و شاخصی برای دعا کردن هست. معلمین قدیم دوست داشتن دعاهای نمونه ارائه کنند تا به مردم تعلیم بدن که چگونه دعا کنند. اونها دعاهای کوچکی به اونها میدادند و میگفتند: حالا وقتی دعا می کنید مثل این دعا کنید. پس شاید عیسی هم همین کار رو میکرد. اما وقتی به ما شاخصی از دعا میده، به ما نشون میده که چگونه دعا کنیم. توجه کنید که سه درخواست مشیتی در دعا هست و چهار درخواست شخصی. قبل از اون که در آیه یازده دعا کنید به ما بده که اولین درخواست از درخواست های شخصی شما سه درخواست مشیتی دارید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ملکوت تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود من این تفکر رو که دعا کنیم تا اراده پدر در های زمینی ما انجام بشه دوست دارم همچون اراده او در جای‌های آسمانی اما به درخواست‌های مشیتی توجه کنید ما خدا رو پدر خطاب می‌کنیم. پدری آسمانی، یک پدر آسمانی کامل و بعد مشیت‌ها اینها هستند. نام تو، ملکوت تو، اراده تو. باز هم میگم که تعلیم کتاب مقدس به این دو کلمه میرسه. اول خدا. رنالد توماس، یک کشیش کلیسای پرزبتری در فیلادلفیا گفته وقتی به اتاق دعای خودتون میرید، با لیست خرید داخل نشید که اون رو برای خدا بفرستید. بلکه با یک کاغذ سفید داخل بشید. و وظایف خودتان را گزارش دهید از خدا بخواهید که فرمانش را برای شما بگه توجه کنید که پیش از اینکه درخواست‌های شخصی که با جمله به ما بده آغاز میشه را در دعا بیان کنید چیزی که در واقع شما باید بگید اینه نام تو پادشاهی تو اراده تو میخوام که نام تو مقدس بشه این به معنای احترام هست که تمام دنیا با ترس احترام بذرد من میخوام که پادشاهی تو بیاد که به این معناست که اراده تو در بدن زمینی من انجام بشه درست همونطور که در ابعاد روحانی یا آسمانی انجام میشه میبینید که اینجا خدا اول هست در واقع میگه پدر آسمانی آنچه که واقعا میخوام نام تو برفراشته بشه نام خدا به این معناست ذات حضور او ذات هویت و ماهیت او من میخوام که همه تو رو تکریم کنند و به خاطر هویت و ماهیت تو بعد میخوام که پادشاهی تو بیاد من میخوام که پرچم سفید تسلیم رو در قلب همه مردم بكاری تا اراده تو در بدنهای زمینی انجام بشه همونطور كه که در آسمان انجام میشه حال که این دیدگاه رو تثبیت کردیم که خدا اول از همه باشه و برای درخواستهای مشیاتی دعا کردیم حالا چهار درخواست شخصی میبینیم. به ما بده ما را ببخش ما را در وسوسه میاور و رهایی مانده نان روزانه ما را به ما بده به تأکید روی کلمه روزانه دقت کنید تستیق میکنه که خدا منبع تمام معاش ما هست. نکته همینجاست. ما به خدا میگیم خدایا برای برآورده شدن نیازهام به تو نگاه میکنم و این تنها لفظ نان نیست. اینجا نان معنای عامتری داره به معنای تمام نیازهای ما هست. غذا، استراحت، محبت، همه چیز. ما تصدیق میکنیم که نیازهای ما رو خدا برآورده میکنه. پس به خدا میگیم پشت در بسته در اتاقمون با خدا صحبت می کنیم. کسی نیست که تحت تأثیرش قرار بدیم امروز تنها امروز نان روزانه ما را به ما بده نیازهای ما را امروز برآورده کن روزی یک بار این اولین درخواست شخصی هست. و سپس ما را ببخش ما همه گناه می کنیم. پس همگی به بخشش نیاز داریم این حقیقت که ما بخشیده شدیم به این معناست که باید دیگران را ببخشیم پس این درخواست اینه ما را ببخش چنانکه ما دیگران را میبخشیم درخواست شخصی دیگر اینه که ما را در وسوسه میاور ما همه در زندگی به هدایت الهی نیاز داریم ما را در آزمایش میاور به نظرم تأکید بر این هست که ما را هدایت کن تا در وسوسه گرفتار نشیم و بعد شاید بشه اینطور گفت ما را از شریر رهایی اینها چهار درخواست شخصی هستند و سپس به پایان دعا میرسیم پادشاهی و قوت و جلال تا ابد از آن توست آنچه که ما در واقع میگیم اینه که پدر قدرت از تو صادر خواهد شد پس پدر جلال همیشه برای توست و پدر همیشه نتیجه متعلق به توست ملکوت یا پادشاهی از آن توست در واقع به این معناست که من هیچ پادشاهی برای خودم نمیسازم اگر به درخواست های شخصی من پاسخ دهی، اگر به من بدهی ببخشی و هدایت هم کنی و رهایی بدی هر پیامدی که در قالب کار و حتی خدمت به هم داشته باشه به تو تعلق داره. زیرا قدرت اینکه به انجام برسه از تو صادر میشه. بنابراین آنچه که در پایان این دعا خواهیم گفت اینه پدر ثمره همیشه به تو تعلق داره. زیرا قدرت همیشه از تو صادر میشه. پس جلال همیشه از آن توست. این طرح کلیست برای دعا کردن. این آداب دعا کردنه. شاید یک دعا هم باشه اما این بیشتر یک الگوی دعاست. میبینید حال که به اطراف نگاه کردیم و متوجه شدیم که بدون خدا خیلی چیزها غیر ممکنه بدون فیض خدا حال که به درون و بیرون نگاه کردیم در باب شش ایسا میگه حالا اینگونه به بالا نگاه میکنیم. تا هنگامی که انزبات روحانی مرتبط به دیدگاه خود نسبت به بالا رو یاد نگرفتیم هیچگاه آنچه که باید از درون باشید نخواهید بود و آنچه که باید وقتی به اطراف نگاه میکنید باشید نخواهید بود. حالا میخوام برگردید و این دعا رو که عیسی به شاگردان تعلیم داد دقیق تر بخونید. در اینجا ما تعلیم عیسی به شاگردان رو درباره نحوه دعا کردن شاگردان داریم. همونطور که تاکنون دیدیم در اولین پاراگراف او دعای شاگردان رو با وردهای مذهبی مقایسه میکنه. و اینجا یک بار دیگه میبینید که ادالت شاگردان با ادالت مذهبی ها مقایسه شده. بر اساس این پاراگراف میتونید بگید ادالت اونها موقتی بوده اما ادالت شاگردان ابدی بود. از قسمت‌های دیگر کتاب مقدس اینطور طور استنباط میشه که ادالت مذهبی بسیار سنتی بوده در حالی که عدالت شاگردان عیسی بر پایه کتاب مقدس بنا شده بود و یا اینکه روحانی بود و شاید از همه این شواهد بشه نتیجه گرفت که ادالت مذهبی ها کاتبان و فریسیان ریاکارانه بوده عدالت شاگردان عیسی باید واقعی می بود این مسئله از تعلیم عیسی در آغاز متا باب 6 هدیه دادن استنباط میشه همچنین در ادالت او در عباراتی که درباره ی روزه برای ما تشریح میکنه دیده میشه و در اینجا در تعالیم او درباره دعا رو میبینید ادالت شاگردان او باید واقعی باشه نه ریاکارانه. در تعلیم خداوند ما درباره ی دعا پیش از هر چیز باید عمودی باشه نباید افقی باشه نباید کسی اون رو ببینه یا بشنوه دعا نباید خطاب به انسانها باشه شاید توجه کرده باشید که عیسی میگه نباید چیزی را که میگید دائم تکرار کنید چند بار شده که پیش از اینکه خدا به شما بگه شما به او گفته اید تاکید به طور خاص بر روی تکرار بیهوده است واقعا دشواره که سه بار در روز با یک دعای اصلی سر کنیم البته به این معنا نیست که برای اینکه واقعی باشه همیشه باید یک اصل باشه تکرار کردن یک دعا اشتباه نیست تعلیم اینجا درباره دعا قسمتی که اون را دعای شاگردان مینامیم اینه که با مفهوم بینذیر اون تکرار بشه. موضوع مهم اینه که نباید تکرار بیهوده باشه. اینکه وقتی این دعا رو میخونیم باید به با اون فکر کنیم بعد از اون دیگه بی معنی نخواهد بود. بعد به یاد داشته باشید که ما گفتیم تعلیم دعای شاگردان بر مبنای دو موضوع استوار هست. براساس آیات هشت از باب شش وقتی ما دعا میکن، این دو چیز رو به یاد داشته باشید پدر شما میداند که به چه چیز نیاز دارید و شما نمیدانید که واقعا به چی احتیاج دارید شاید فکر کنید که میدونید اما آنگونه که پدر نیازتون رو میدونه شما نمیدونید به چی احتیاج دارید پس اینطور دعا کنید اینجا الگوی دعا رو میبینیم و الگوی دعا بر دو موضوع بنا شده نمیدونید به چه چیز احتیاج دارید اما پدر آسمانی شما نیازتون رو میدونه پس اینگونه از او خواهش کنید دیدیم که این مبنای برای تمام تعالیم هست. پدر آسمانی شما میداند اما شما نمیدانید اگر اینگونه دعا کنیم متوجه خواهیم شد چون اگر آنچه میطلبیم اراده او نباشد پس آن را نمیخواهیم به نظرم این یک الگوی خارق العاده از دعا هست همانطور که گفتیم ما با یک لیست خرید وارد اتاق دعای خود نمیشیم و به خدا فرمان نمیدیم ما برای خدای توانا دستور صادر نمی کنی. ما با کاغذی سفید به حضور خدا میریم و وظایف خود رو گزارش میکنیم وقتی این گونه دعا میکنیم در واقع از او میخواهیم که به ما مأموریت بده اگر نامهای خدا رو بررسی کنید متوجه خواهید شد که اونها مکاشفه ای از جوهر وجود او به ما میدن جوهر شخصیت و وجود او شخصیت خدا تنها به یک چیز محدود نمیشه شخصیت او همچون رنگهای یک رنگین کمان است طیفی از ویژگیهای خدا هست که در وجود خدا و شخصیت خدا مطالبی رو به ما میگه. او محبته اما تنها محبت نیست. او ادالت کامله همچنین چیزی به نام خشم خدا هم هست. خدا پدری است که محبت میکنه و در این دعا به ما گفته میشه که اینگونه خدا رو خطاب کنیم. و این یک فکر عالیه خدا شخصیته نه اینکه خدا نیروی همچون جاذبه باشه. در عهد عتیق او شبانه شبانه اعظم اگه درباره چوپانی، و ارتباط شبان با گوسفندان تحقیق کنید متوجه میشید که این تشبیه به ما میگه که خدا شخصیت داره عیسی به ما میگه که خدا حتی تعداد موی روی سر ما رو میدونه ما برای خدا خیلی مهم هستیم و تمام جزئیات ظریف زندگی ما برای او مهم هستند او رو باید پدر خطاب کرد وقتی بعضی ها خدا رو پدر خود خطاب میکنن با مشکل مواجه میشه چون پدر زمینی اونها انگونه که یک پدر باید باشه، نبوده. وقتی اونها خدا رو پدر صدا میکنن، به جای خدا پدر زمینی براشون تدایی میشه. به همین علته که باید او را پدر ما که در آسمانی خطاب کنیم. او پدر آسمانی کامله. او هر چیزیه که شما تا کنون از یک پدر انتظار داشته اید و حتی بیشتر. پس او رو پدر آسمانی خود صدا میکنیم. و سپس اولین درخواست ما اینه: نام او مقدس باشه یا محترم باشه. سپس پادشاهی تو بیاد. پادشاهی خدا یک مفهوم پیچیده نیست. افرادی که در کشورهای سلطنتی زندگی می‌کنند خیلی ساده‌تر می‌تونن مفهوم این رو بدونن تا کسانی که در کشورهای دموکراتیک زندگی می‌کنند. جایی که پادشاهی باشه همیشه قلمروی وجود داره که پادشاه بر اون حکمرانی می‌کنه. قلمروی که او بر اون حکومت می‌کنه پادشاهی یا ملکوته این مفهوم که خدا یک پادشاهی داره به این معناست که خدا همچون یک پادشاهه و او در مقام شاه شاهان و رب الارباب بر تمام این دنیا حکمرانی میکنه. در عهد عتیق دورانی بود که خدا میخواست یک حاکم ملی و یک حاکم عرضی باشه. آیا داستان عهد رو میدونید که قوم اسرائیل این رو در زمان سموئیل نخواستند؟ اونها نزد سموئیل آمدند و گفتند ما این نظام رو دوست نداریم. ما نمیخوایم که خدا پادشاه ما باشه. خدا میخواست که پادشاه اونها باشه. به اون حکومت تئوکراسی یا حکومت خدا بر مردم میگیم. اونچه که او برای حکمرانی میخواست این بود که افرادی همچون موسی باشند که به بالای کوه سینا به حضور خدا بیان و در حضور خدا برای قوم شفاعت کنند و سپس در حالی که کلام خدا برای قوم رو در دست دارند از کوه پایین بیان. وقتی او به بالای کوه رفت کاهن بود. وقتی از کوه پایین اومد نبی بود. نبی کاهن اون نور رهبری رو که خدا برای اداره پادشاهی خود بر روی زمین که ملی و ارضی بود نیاز داشت می کرد. اما قوم خدا برای خود پادشاهی می‌خواستند خدا به اونها پادشاهانی داد و اون پادشاهان هزار دردسر براشون درست کردند پس از اون اسارت ها و 400 سال سکوت که خدا دیگر توسط انبیا با قوم صحبت نکرد و بعد یحیای تمیذ این خبر خوش رو داد که خدا می خواد دوباره پادشاه اونها بشه عیسی و یحیای تمیذ با مععزه ملکوت خدا از راه رسیدن اما آنها شرط دادن که وقتی ما صحبت از پادشاهی خدا می کنیم به این طرف آن طرف نگاه نکنیم شاید این گروه باشه یا اون گروه یا این ملت یا اون ملت حالا پادشاهی شخصی هست پادشاهی خدا درون شما هست اون در درون هر شخصی هست آیا اجازه میدید که خدا پرچم سفید صلح رو در قلب شما به احتزاز در بیاره؟ آیا یکی از زیر دستان او خواهید شد؟ وقتی کسی زیر دست او میشه و ایسا رو به عنوان پادشاه زندگی خود میپذیره حالا قسمتی از قلم روی که او بر آن حکومت میکنه. ما وقتی این درخواست رو در دعا میتلبیم پادشاهی تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود و بهتر ترجمه کنیم در زمین همان گونه که در آسمان است چون در دیگر قسمت های کتاب مقدس تعلیم داده میشه که ما ظرفهای سفالی هستیم در این ظرفهای زمینی ما گنج بزرگی داریم ما مسیح رو داریم که خداست و او در ما زیست میکنه و مسیحی که در قلب ماست تنها امید برای انجام اراده او هست من معتقدم که تعلیمی که به طور خاص در دوم قرنتیان بابهای چهار و پنج هست به نظرم با این تعلیم همخانی داره با این درخواست که میگه پادشاهی تو بیاید و اراده تو در ظرف سفالی من انجام بشه آنگونه که در آسمان انجام میشه پس از اینکه برای درخواست‌های مشیتی دعا کردیم برای درخواست‌های شخصی دعا می‌کنیم نان روزانه ما را امروز به ما بده بر تأکید روی امروز و روزانه دقت کنید معتادان مثل ها یا معتادان به مواد مخدر که در حال بازسازی خود هستند به ما میگن که وقتی بر اعتیاد خود غلبه کردند توانستند اون رو حل کنند اونها متوجه شدند که این برایشان یک مفهوم بسیار مهمه اونها نمیتونستند ذهن خود رو برای یک سال هوشیار نگه دارن بنابراین آموخته بودند که تنها از خدا بخواهند که فقط امروز اونها رو هوشیار نگه دارن خب این یک تاکید در دعا هست نان کفاف امروز ما را به ما بده همونطور که قبلا گفتیم یعنی نه تنها نان ما یا معاش جسمانی ما بلکه تمام چیزهایی که نیاز داریم ما نیاز به محبت داریم، نیاز به پذیرش داریم، نیاز به تایید داریم، به خیلی چیزهای دیگه در کنار نان نیاز داریم و من گمان می کنم که کلمه نان تمام نیازهای ما رو دربر بر میگیره. پس درخواست اینه، امروز نان روزانه ما را به ما بده و سپس ما را ببخش. اگر ما انجیل خدا رو درک کنیم، چقدر به بخشش نیاز داریم؟ کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه به ما میگه که ما گناهکار هستیم. این مشکل بزرگ ماست چون ذات گناهالود داریم ما گناه میکنیم چون ذات گناهالود داریم و چون اعمال گناهالود انجام میدیم همیشه باید این دعا رو بکنیم ما را ببخش من معتقدم که خداوند خواسته که ما حداقل هر روز این رو دعا کنیم بیرو در بایستی حداقل فکر میکنم هر روز باید این گونه دعا کنیم ما را ببخش حالا توجه کنید که عیسی میگه قرض ها وقتی این دعا در جلسات پرستشی خونده میشه غالباً این گونه است خطایای ما را ببخش همان گونه که ما کسانی رو که به ما خطا کرده می میبخشیم در دو قسمت این تعلیم در متا شش و لوقا 11 هیچگاه در کتاب مقدس این طور گفته نشده در هر دو جا کلمات قرض و قرض هستن هستند پس درسته که وقتی در جمع دعا می کنیم این طور دعا کنیم قرض های ما را ببخش چنان که ما قرضداران خود را میبخشیم درخواست دیگه اینه که ما رو در آزمایش میاورد. باب اول یعقوب میگه هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه میکند. زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمیشود و هیچ کس را تجربه نمی کند. چرا خدا را خطاب کنیم و بگوییم ما را در آزمایش میاورد؟ من شخصا بر این باور هستم که باید بین دو کلمه ما و میاورد در آیه 13 از متاشش یک مکسی باشه. فکر میکنم باید اینگونه خانده بشه ما را به وسوسه هدایت نکند من معتقدم خدا ما را هدایت میکنه تا خود را با وسوسه روبرو نبینیم. به تعلیم عملی کتاب مقدس درباره وسوسه توجه کنید. همواره اینطور بوده شما ستون قدرت نیستید پس خودتان را در معرض همه نوع وسوسه قرار ندید و از خدا بخواهید راه گریز را براتون فراهم کنه خیلی از مردم اول قرنتیان ده سیزده رو درست نفهمیدن هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت این آیه رو بیاد دارین؟ حالا آیه بعدی قرنتیان باب ده رو بخونی؟ آیا میدونید آیه بعدی چی میگه؟ بنابراین بگریزید. این چیزیه که اون میگه کتاب مقدس همیشه به ما میگه چون ستونی قوی نیستید باید هر روز دعا کنید که وسوسه نشید وقتی عیسی در باغ دعا ایسا تلاش میکرد رسولان با او دعا کنند. او حتی نتونست اونها رو برای یک ساعت بیدار نگه داره. او تمام شب در دعا بود و اونها خوابیده بودن. چند بار به اونها گفت باید بیدار بمانید تا در وسوسه نیفتید. اگر واقعا میدانستید که وسوسه چیست و چقدر قویه همیشه به این شکل دعا میکردید. ما را در آزمایش آور. من معتقد نیستم که خدا میخواد در زمانی که وسوسهها بزرگ هستند ما سازش کنیم، زعفای خود رو اعتراف کنیم. من معتقدم این اراده خدا هست که ما از روبرو شدن با وسوسه اجتناب کنیم. من معتقدم که باید حسارهایی بسازیم تا خود را در برابر وسوسه حفظ کنیم. حتی دیوارهای زخیم بتونی که ما رو در برابر وسوسه حفظ همان گونه که در باب پنجم متا دیدیم وقتی ایسا گفت اگر چشم تو را به گناه می اندازد آن را درآور، اگر دست راست تو تو را به گناه می آن را قطع کن، و در جای دیگه میگه اگر پای شما شما را به گناه میندازه اون رو قطع کنید، گفتیم مقصود او از گفتن این سخنان این بود. هر آنچه شما را به وسوسه میندازه، آنچه که شما با چشم خود میبینید، با دست خود انجام میدید، جایی که با پاهاتون میرید، اگر همه این چیزها شما را به گناه میندازن، پس نگاه نکنید. به جاهایی که میرید تا وسوسه بشید نرید. شاید این همون جهتی باشه که درخواست آخر در اون قابل درک باشه ما را از شریر رهایی ده خدا چگونه ما را از شریر رهایی میده مسلما با قدرت روح القدس این کار رو میکنه اون که در شماست بزرگتر است از آن که در این جهانه. اما چند موضوع عملی در باب رهایی خدا وجود داره شاید قاعده او برای رهایی از گناه و وسوسه شدن به گناه درست در اینجا دیده بشه همانطور که بعضی مترجم ها گفته خدا یا اگر ما را هدایت می کنی، دیگر نخواهی دید که وسوسه شویم و به این شکل ما را از شرید رهایی خواهی بخشید خب هفت درخواست رو در آداب دعا دیدید اینگونه دعا کنید پدری که در آسمانی نام تو پادشاهی تو اراده تو و سپس به ما بده ما را ببخش هدایتمان کن رهایی منده و سرانجام در دعا به چنین نتیجه می می‌رسه جلال همیشه از آن توست زیرا قدرت همینشه از تو سادر می شود و پادشاهی از آن توست. وقتی طبق الگویی که عیسی مسیح خداوند به ما گفته دعا کنیم، دعای خود را این گونه به پایان می رسانیم. عزیزان، موزی خداوندمون عیسی مسیح در باله کوب بسیار فراتر از رفتارهایی هست که ما به عنوان شاگردان اون باید داشته باشیم. وقتی به دعایی که عیسی به شاگردانش اشیاد داد که دعا کنن فکر کنید و اون رو الگویی برای دعاهای خودتون قرار بدید. شک نیست که کمک بزرگی برای زندگی دعای شما و رابطه شما با خدا پدر آسمانیمون خواهد کرد. بیاید درس امروز رو با دعای خداوند به پایم ببریم. ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید. ارادی تو همونطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. نان روزانی ما را به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند بخشیده ایم. ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر ده سیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا عبدالاباد از آن توست. آمین.